بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على أشخة الأنبياء والسيد المرسلين والأله وسهله أجمعين أما بعد امروز وقال نجوم بهذا مباحث هذا إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشارب إن شاء الله بعد عشر من جلبته مباحث إسراء ومعراج رفاكم بشبه لأنه في هنوز بحث فيهم در ضمن إسراء ومعراجها حالا قبل از اینکه بحث شروع بکنیم فقط یک اوزفاهی بود بعضی از دیتان که لمن بودن که هی hey ما شروع میکنیم خطش میکنیم دست ما خودمون نیست حتی بعضی گله هم دارن که چرا بسند وقتی که دوباره درست شروع میشه یا صحبت ها شروع میشه اعلانی حد درخل نمیشه حالا حضر ما بیشتر رفتن بندره برای کلاسایی که ما داریم و حضر دیگر همون ادامه تحصیله که هنوز که چند سالی هم باقی مونده که تمام بشه برای رفتن به وقت میبره که ما بریم و بر بگردیم انشاءالله هر وقت که ما فرصتی داشتیم انشاءالله در خدمت شما هستیم با سیرت مصطفی صلی اللہ علیه وسلم و سلام. در همچنین شبیشه به جمعه حالا هفته یعنیده نشد انشاءالله هفته بعدش ما خدمت شما هستیم با ادامه همین مبحث بحث من ادامه بدید بحث رسول الله صلی الله علیه وسلم و معراجش رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اشاره کردیم گفتیم که در آخرین جا در آسمان هفتم دیدن که چهار تا روز که از اونجا اشتفاق پیدا میکنه دو تا روزی که در باطن و دو تا روزی که ظاهر هستن همونم دج... نیل و فراد عندما مباحث الى اخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم در انجم و شاهده حديثي در صحيح بخاري كالله صلى الله عليه وسلم شنون ميبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا اثير في الجنة وقت كما ترحين ك در بهش مرافم حدامي زدم اتيت على نهر حافته قباب قباب اللؤلؤي ودر ربواتي الدر المجوّف دائم ك يكرودي در کنارش مرواریدهای درخشان لؤلؤ المجوه در کنارش یک آلا اون مرواریدهای خاصی که درخشش خاصی درن گفتم ما هذا یا ای جبرئیل این چیه جبریل گفت هذا الكوتر الَّذِي اعطاك ربك عز وجل قال فضربت بيدي فيه فأهوى الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفري وإذا رضاه رضاهه اللؤلو يقول يعني يعني استئول كذلك يجب لي إن شاء رودهات قفك إن رود كوسرات إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأذفر سبحان الله إن حدیث تفسیری این آیه است ما اون چیزی که بهش اعتقاد داریم این است که سنت اومده قرآن را شرح بده و وظیفه رسول الله صلی الله علیه و آله ما ما در هیچ جا قرآن نداریم که باید نماز صبح در فنا بقیم بیام نماز بخونیم و نداریم که ظهر فلان بقیم بیام نماز بخونیم اقیم الصلا رو داریم نماز رو برپا داریم چطور چند رکعت چه وقت نداریم و خداونم می گوید و انزلن ایلی که ذکر نزل ایلیهم ذکر نازل کردی من قرآن تا این که بکنی واضح به معانیش پس اینجا این کوثری که هست دخترش خاطمه نیست رضی الله عنه کوثر رودیست نام رودی هست که این رود در حوض رسول الله صلی و علیه وسلم ترازیر می شود در روز قیامت وقتی که انسانها از قبرشون بیرون میایند، رسول الله صلی الله علیه و در کنار حوزش ایستاده و مؤمنان را میشناسد از نوری که در صورتشون و در درکایشون هست. چون گلی یا رسول الله گفتند که من از آثار بزودیشان درخششی که در اعضای بزودیشان حتما انها خدا من آنها را میشناسم خداوند ما را محروم نکند از این، از نشیدن از این رود و از حوزه رسول الله صلی الله علیه و سلان. رودی و حوضی که کسی از آن بلوشد دیگه تشنه نمی شود کسانی هستن که از امت محمد همونطور که در صحیح بقاری دارین محروم میشند. کسانی که خوش به سنت مرتفی می این اشخاص سنت مرتفی را نمی صداشون را بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالا می برند که در نماز در رکعت دوم داشتید خدا را نه می کند این که بر حرف رسول الله حرف بزنید که برود. این اشخاصی که این چنین جرأت را به خودتون میدهند که سنت را دیر فعال ببرند از حوض رسول الله صلی اللہ علیه وسلم محروم میشودند یعنی چیگری که در آیه سوره کوثر بینید عظمت خدا منتی هست که به امت محمد و محمد میگذارد این اعطینا کلکوثر ما به تو کوثر دادیم این اعطینا کلکوثر فصل لغب کونها فس برای این که ما این رود بزرگی را رو بهتون دانیم ای امت محمد. نماز بخونید و قربانی بکنید اگر قرار که رسول الله این چنین ام بشه که نیازی به دستور ندارن پس چه به امت محمد صلی الله علیه و سلم. ما این که نیاز به قربانی داریم ما این که نیاز به نماز داریم رسول الله که گناهش ما قبل و بعد بخشیده شده علیه الصلاه و السلام پس به خاطر اینکه این چنین نعمت هایی را خداوند به ما داده است ما بشکردار و سپاسگزارش باشیم قدر نعمتاش را بدونیم و قدر این نمازمون که دیشتب بهش اشاره کردیم بدونیم همون به خودتون میدونیم گفتیم نماز از پنج بعده تحریف داده میشود به پنج بعده و کجا فرض میشود در آسمان هستون پس نماز خیلی عظیم است کوثرم عظیم است که با منت بزاستن با این کوثر خداوند دستور به نماز میدهد می در این آیه دیدم این رود کوثر و گفتیم که در کنار شسولا صلی الله علیه وسلم مرواریدهایی را گفتن رسول الله علیه و سلم من خواستم با دستم از این آب بردارم دستم در این رود بکنم جبرائیل دستشو درآورد کرد دیدم که خاکی که کنار اون رود بود خاکی بود که بوی مشک و بوی عطمی میداد خوشبو بود و ایداراده اللولو بسنگ هایی که بغل اون رود خانه بودن همش مرواری بودن بله این نعمت هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت خداوند دیده چه خیلی چیزا هست. یکی از بح... یکی از مهمترین مباحثی که در بحث اسراء و معراج ما گفتیم احادیث زیاده بیش از ده تا از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه اسراء و معراج را مقددان. رسول الله فرمودند که به بهشت رفتن به جهنمم سری زدند. از بیرون از جهنم سری به جهنمیان زدند و دیدند که در جهنم چه خبر است. امتت را نفیحت می کند که می گوید لما عراج بی ربی عز وجل مرد تو لهم افضار من نحا وقتی که من به معراج رفتم به آسمان ها رفتم خدا به من کسانی در جهنم نشون داد که باپنج با ها یا ناخنهای مسیشان روی سورت خودشان خنجار می یقمشون وجوه هم و صدور هم صورتشون و تینه هاشون با اون پنجالها و اون ناخون هایی که دارن به سر و صورت خودشون میکشن و میکنند. میکنن خودشون با دست قنشون خودشون را عذاب میدهن این نتیحت به امت محمده به کفار نیست چون کفار در ساینترین جای جهنم هست این شاید ما شاید ماها هم باشیم از این جمله کسانی که به سر صورت خودشون میریدن فقل تو من ها یا جبریل من هؤلاء اائنات جبری. دلشان الله صلی الله علیه و سلم رو حط شده که اینا دارن چیکار میکنن؟ قال یعنی جبریل گفت هؤلاء الذين یاکلون لحومنا. اینها کسانی هستند که گوشت های مردم را میخورن. کسانی که غیبت دیگران میکنن، کسانی که بهتان به دیگران میزنن. ذکر بدی از دوستان و برادران خودشون میکنن، میکنن. ما در نگاه بکنیم بین خودمون اون که خداوند من خواست در افنی رکعه چی بشه محمد رسول الله والذین معه اشدهو على الکفار رحمهو بینهو اونهایی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم برکفار جدیدن لیکن بین خودشون رحمت دارن هم دیگر را دوست دارن به نفرت هم دیگر لیکن الان خودمون داره بر خودمون نگاه بکنیم در اون بازار دیگه و در خونه دیگه بین پدر و بین برادر همه اختلافات این پوشه این حرف میزنه و این پوشه اون حرف میزنه ولی این چیزهایی هست که خداوند کاسته از بین برود تا اینکه اخووت ما حذف بشه قدرت محبت بشه قدرت ما با همبستگی ما که یک دست یک کارش با هم باشه نه که به همدیگر دیگر اگر این چنین عواملی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم تو سیهش میکنن ما بهش گوش ندیم دیگه غروبرگر نیستی دیگه خداوند گفته که عذاب میدهم میدم خداوند غفور و رحیمه اگر غفور و رحیمه پس چرا عذاب میدهد چرا عذاب میدهد چون شدید العقابه چون شدید شدیدالعذابه چون خداوند گفته و قولش هم حقه و خداوند صاحب عذابه گفته کاری را انجام میدهم میدهم هامون که در سوره بقره دارین يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إكتانك إيمان وردين الثمامية درهاية اسلام ورد اسلام بشيت بلد تحليم شده اسلام بشي هر اسلام گفته قفت برسر وشاش خدا ورسولت قفت برسر وشاش واي بر شما اگر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات بعد اثناء يبقى الشيخ يا أيها الذين آمنوا خطوات الشيطان إنه لكم عزو مبين جلوه يا راه شيطان رب فيش نجري كل شيطان دشمن شماس بعد اثناء خضبا بيقيت اگر فاهايتا لغزي بعد اثناء حق ردون سي فإن من بعد ما جاءتكم البينات بعد اثناء بيناتوا ما الدليل ما تنكر حرامي فاعلموا الله عزيز حكي بداني تخضرات وحب اح أثبة جس نج مغ مهم بيننشنا تحديد هي آيات هل ينظرون إلا أن يياتهم الله في ظولد من الملاتد في ضولد من الغام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أي منتدري خدااب الذقياماتبييات ماقزاتكنا تبرش لقال خضام بي بيات هل البني إسرائيل بكر بن إسرائيل كم أتيناهم من آيات بينة ومن يبدل النعمة الله من بعد ما جاءته ف الله شديد القفاب بهورت در اسرائیل چقدر اذهابشون دادیم چقدر نصیحت کردیم لیکن دیره قط نوشتن بدانی که خداوند بعد از اینکه مدارکی را به شما فرستاد، پیامبران را به شما فرستاد بدانی که خداوند بعد از اقامت حجت خداوند شدید العقابه دیگه نگو خداوند غفور و رحیم است بله خداوند عذابش شدید است و اینجنینم توبیخ کند اگر کسانی فقط والله بگن ما مسلمانیم ولی تسلیم شده نباشن بدانند که خداوند صاحب عزت و صحار و صاحب جبروت است. اینها اینهایی که به تنسورت خودشون ریختن، گفتی فکر نکنیم که گفارن از ماها شاید باشند و شکی هم نکنیم در این و یطعونه پی اعراضهم و درباره ناموس مردم حرف میزنند ناموس مردم وزیر سوال میبرند اینچیدین این اینچیدین بر خودشان در میابرند و در روایت دیگر از انس داریم كرس الله صلى الله عليه وسلم فرميان رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارب من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء شبك من بإصدار جدم كثانك با قيشيهاية أو لبهاشون گرفته می شود و می شود گفتم ای جبرئیل اینها کی هستند که اینجوری لبهاشون زبانهاشون بریده میشن قال هؤلاء خطباء امه من امتي جبرئیل گفت اینها خطبایی از امت تو هستن ای محمد یامرون الناس بالبر و ینسون وهم و هم یتلون الکتاب افلا یعقلون اینها ها هستند از خطبای امتت که مردم را به سوری نیکی میخوانند لیکن خودشان را فراموش میکنند در صورتی که قرآن را میخوانند آیا عقل ندارند؟ نمیدانند؟ شو خیل با هیچ کس. چه با عالمش و چه با جاهلش چه اون کسی که میداند و چه اون کسی که نمیداند خداوند چیخی و بندگانش ندارد خداوند کلامش حقه برای همه هم اون جاهلش نقامد بند بندگی شود توفیق خداوند خواهد بود و اون عالمش خداوند عمل نکنه فقط به مرحب نکنید خودش نکنه خودش باید این چیهی توان پس بدهد در جهنم خداوند این نیست که فکر بکنیم چون فران کس برقاندهد چند تا حدیث بلدهد ورد جهنم نمی شود روزی ابو حرره رضی الله عنه صحاب یکی از تابعیم نیاید می گوید به من حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو که شنیده اید گو که من اینجا یک حدیث را شنیدم. در همون جا غشت می کند ابو حرره بلند می شود بازم میگوید خب بهت میگم بازم قشت میکنم سه بار این مسئله تکرار میشود تا اینکه به صورتش به زمین میوفته ترس درش داشته ابو حریر رضی اللہ عنه بعد میگوید رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم به من چیلین گفتند که اولین کسانی که در روز قیامت محاسبه میشود قارئین قرآن هست به قارئ قرآن و کسی قرآن سلاوت میکند و قرده در این دنیا به اون مؤمن گفته می شرا قرآن قاندی؟ شرا قرآن را حفزت دی؟ می بیاد یارب قرآنو یاد گرفت محفزت دن تو اینکه بناشب نماز بیسه خدا من می بیاد کذبت کذبت و یقول ملائکه ترواهی کذبت خدا من بیاد دروگ گفتی فرشتگم می بیان دروگ گفتی اون جا هستی خدا من در سومی این شخص در جهنم خدا من افکر می شب این شخصی که قرآن می کنید بل اینجلی نشوخی نید اخلاص باید باشه در عبادت و در ساعت در علم در هر چی که هست در همین قرآن خوندنمون که کی قرآن خدامن حجت بر علیه ماها نشمد فردا گردن خودمون رو بگیرن و جز اولین کسانی باشیم که در جهنم قدامن افکرنه بشین شوخی با هیچ نسید چه با اون قاره قرآنش و چه با اون متعلمش و کسی که دنبال دین خدا بوده حدیث اینالا جای خ فهديت نشانه هست که جان ابو هو را به تکان در می و آنجا هست آب هو را به غش می کنه می از اینکه جز کسانی باشد مبلغي باشد که به مردم بگوید خودش باه به آن عمل نباشد در قرآن چنین داریم که خداوندی گوید در بحث اسرار و معرج وما ما جعل رؤیا الکی آریناته الا فتنة من الناس ما این رؤیایی که رویای حقیقی همانطور که ابن عباس میگوید اون رویایی که باچش بوده اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم و با جانش در اونجا بوده این رو قرار ندادین مگر که تپنی برای مردم باشد این هم همچنان اسلام معراج فتنه است کسانی این رو قبول ندارند خاتمه قصه چنینه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم از قباو و صحبت میکنند درباره اسلام معراج مشركين مي آيات مات خرمي كل الله صلى الله عليه وسلم مي نزل أبو بكر ايو مش ميش نبي أبو بكر چه ميقول محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر صديق كل قمش نفسه بصديقه بقوة لإنك أخبار غيبية رسول صلى الله عليه وسلم برسر و چشف و داشته شنين ميجوية. إن كان قد قالها فقد صدق اجر الرسول الله صلى الله عليه وسلم قفتت حقا اجر قفتت حقا رسول الله صلی الله علیه و سلام میگوید درباره اسراء اونم اونها متردد شدن این جینین رسول الله صلی الله علیه و سلام میگوید مشرکین اومدن سوال کردن من هنوز نرفته بودم نمیدونستم که این بیت المقدس چطوره و چطور نیز زریادمم خبری نمونده بود مشرکین اومدن خب ادر طور رفتی به اسراء چی دیدی چی شده اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلام میگوید با خودم یکم تفکری کردم دیدم که آنچنان توجهی نداشتم میگه خداوند تصویری از بیت المقدس تصویری از ام القداقصه در جلو من آورد و هر چی که سوال می‌کردن جوابشون می‌دادم ولی این جنین بود این امتنان و این امتنانه هر چی که بوده بهشون گفتم لیکن این فتنه است که با این وجودی که رسول الله صلی الله علیه این جنین معجزه را آنها میگوید. و با میگوید که چی شده و چی نشده و چی هست و چی بوده است و این وجود اونها قبول ندارد تا چهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام برگشتد نوع شطورانی که بوده است به مشرقی میگوید که بله فلان رحمی قاهن اومد فلان کسان باهن اومد با شطورانی که فلان شطور چینین و چنانه بعدم اونها سردا پس سرداش میرسند اونها وقتی که میرسند وضع چنین معجزات رو می‌بینند از آن شکرت الله صلی الله علیه و دیده دیده‌ها در امتیری که به اخدار افتند به بیت المقدره رفتند. با این وجود اینو آمدت الله صلی الله علیه و سلام قبول نکردند. این از مباحث اسراء و معراج براتبته صلی الله علیه و سلام به اونجا. الان بحث به همینجا خاتمه بدیم هرچند گفتم درسای زیادی هست. از اطراع و معراد رسول الله صلی الله علیه و از ملاقاتش با پیامبران خدا نماز خوندنشون به انبیاء که گفتیم دلالت فضل و فضیلت و خیریت و بزرگی رسول الله صلی الله علیه و می رتونه از عظمتش که بعدی که رفتن به آسمانها آسمان و به هشت آسمانو دیدن و بعد از اینکه تا جایی رسیدن که به الله بخند گفتن نمازها نمازهای پنجگان فرز رسول الله صلی الله علیه و آله با این توشه به مؤمنان برمیگردد و خبر می‌دهد از آنچه دیده است بله این اثرا و معراج امتحان ياس برای مؤمنان و قوت قلبی برای رسول الله صلی الله علیه و سلام که حقی چون اثرا و معراج وقتی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلام دو تا از اشخاص بزرگ رضایت دادن ابو طالب به همسرش خدیجه دیگه قصدی بانی نداشت خداوند برای اطمینان قلبش خداوند برای اینکه بزرگترین نعمت ها و بزرگترین معجزات را نشان رسول الله صلی الله علیه و وسلم بدهد او را به معراج میبرد و معجزه‌ای را به بدهد هیچ یک از پیامبران پیشین نداشته بله اند بدر خاتم النبیین خاتم الرسل و خیر البشر که باید این چنین باشد و خداوند می تا دیگر بر بشریت و چکی نباشد و دیگرم پیامبری نخواهد آمد این خاتمه بحثمون و اینم مباحثی از اسراء و معراج است و اگر خداوند بدهد بازم این سخنان را ادامه بدهیم از سیرت صلی الله علیه و وسلم و صلی الله علی محمد و علی آل محمد